أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو كان عرضا قلبا وشفرا قاسدا لاتبعوا فولات بعدت عليه الشقة وَشَيَحْنِثُونَ بِاللَّهِ لَوِ اشْتَقَعْنَا لَقَرَجَنَا لَعَكُمْ يُذِيكُونَ أَنْفُشَهُمْ وَاللَّهُ نَعْلَمُ إِنَّ هُمْ لَتَابِينَ عَبَى اللَّهُ عَنْي فَلِمَ أَذْمِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَغَيَّنَ مَتَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ لا يَسْتَأْبِنُكَ الَّذِينَ يُقِيلُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اَنْ يُجَاهِبُوا بأموالهم وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِمُهُ مُقِنْ انما يساكنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وتسابقت قلوبهم فهم الرحمن الرحيم در غزبه تبو غزبه تبو خودش یک غزبه امتحانی و آزمایشی بود که در پسل تابستان موقع محصول خرمان دستور رسید که به تبو که به مسافت شیر و دور از مدین مناوره سرهد رونی ها بود و یک لشکری بسیار مجرد هست رسول علیه الصلاة والسلام کرد که ببرد رسول علیه الصلاة والسلام اِلَّا شکرنا مستقیمن در دا داد دا منافقها لیتا و تخلص کردن از مخلصینام سے چند طریق ماندن و آخر داشتنا الهان مبارک آمده و ہر بنا جنم ذات میں تاثیر در این شورا ہے اجا اللہ و تعالی نہیں اگر نہیں این قصرہ ربوق یک سامان قریبا و سفراں قاصدا م به کے معنی ان انسان عارف مشوبد و نہیں مراد سلمان لوکانا عرما قریبا اگر این مسافرات یک سامان قریب الهجون بود و سطری در میانی میدود تو لت تباوکا این منافقین شمار اتباه می کرده ای پیغمبر ولیکن بعدت علیه مشکا یکی خیلی دور بود بر سر آنها مسافت مسافت عظیمی در پیش بود دور بود برای آنها به این خاطر آنها شما را نکردند. نکردم لیکن وقتی شما از غزب باد باز می گردید، برای معذرت خواهی کسام بسیار بزرگی میخورند و سیه اهلتون بلله و وقتی شما باز میگردید از غزب و تبوکینا کسا میخورند به خدا که اگر استطاعت می داشتن که با شما هم رابشند البتر حتماً قسم می کنند که اگر ما استطاعت می داشتیم که با شما حرکت کنیم در این مسافت غزوی تبو تو لخلجنا معاکم حتما اے پیغمبر ما با شما خارج می به خاطر این دنوخوهای بزرگ یه لکون خود را حالات کردن نقصقای خود را به حلاکت انداختن چون کسر دروغ می و خدا می داند جانها دروغ می گرد با وجود استطاعت آمدن با شما هم رانشدند اللہ تعالی از قادریت اینها اطلاع کامل دارد بسیاری بار لیتا و افاغنمائی مختلف و بنابون آمدن و اجازت رکتا و پیغمبر دو خوباش شما که نمیلیسی توانائی نداری پرشت نداری نیاری ان الله سبحانه وتعالى تعالی کہ اپ اللہ پر لهم؟ نے لم ادن تلو اجر بها اذا سدادي لك, لك الذين صدقوا تو اکبرائے شما مشکک مشن ان ہائے کی یا آنهایی که با اجازنی خان بیشینه اگر اجازن باشد اجازن منشینه که اگر اجازن نرسید برای نشستن ننشینه شما چرا؟ اپ اللہ ارکا اولا اللہ تعالیٰ اپنی کنند و بعد تطابی کنند اللہ تعالیٰ شما را بخشیده چرا اجازن آدی کوری و صبر نکردی تاکہ مشخص بشنم برای شما فادقید آنهایی که شما اجازه نمیدالید دو همرا می آمدن اون از صادق می و آنهایی که بدون اجازه منیش اصلا قاسر می شدن مطال من کاغمین کاغمین و هم شما می دالشمین این سوره سوره فاضحه هم دفت شده است که مناطقین را از مومنین این غزر خواهد تکی مشخص کنی غزره تبوک حکمتش حکمت ختمت بالک همین گوز که مناطقه کافر مشخص کشید ات الله <سؤال> ان كلمه عند الله <سؤال> وما حصل <سؤال> يتبين لك الذين صدقوا وعلم القاذبين وسم قاذبين هم الذين مشقت مشوا برائ شوا شوا قاذبين را والمؤمنين مخلصين را اگر کی درجہ اونچا ہو کیا ہے معلوم ہے پیغمبر فردان نہیں اللہ علم والسلام لا یک تازه نکن لذین یومینون بالله و الیوم الآخر اجازه نمیگیرم اکشام آنهاکی ایمان دارند به خدا و نزد آخره برای این مطلب لیالله قبل از آن لام و بعد از آن لام اجازه نمیگیرم به خاطری اینکه جهاد نکنند با مالوچان مهم از جهاد اجازت نمی کیه که محمد بر اجازت آماده اجازت نمی کی لنا سبحانه کمان دارم بخدا روز آخران بر ایئی امت لکی جهاد نکونا پنا با مالجا والله علیم بالمتقین اللہ با اللہ حیرت متقین خدا متقین رمید آنه علیم بالمتقین اینما یستازنکا اللہین لا یومنون بالله و اليوم الاخر تو زنیز که اجاده می گیرن از شما بدون قوض آنهای که ایمان ندارن به خدا و روز آخره من از اول انکار ندار لما اللہ را دستورات خدا را باور ندارن جهد را حکم خدا نمی دارن آنها از شما اجازه می گیرن آنها روز کیامت را هم با انطوری که ادیده داشت باشا ندارن اینما یفردن کاللذین لا یومینون بالله غریب الاسر ورطاوت قلود رون اونها میایی که نشود به اسلام دارد دارد دارد شنید شنید بیغمبر بیغمبر هز هز دل آنها شک دارن دل آنها شکوک دارن، تردی دارن باگرشون نیستی این پیغمبر پیغمبر برحقی محمد پیغمبر برحقی هست قیامتی در مقابل اجاز ما از رو گیر هم بیره به همیار ترددون، اونها در آن شک و شوگری که در دل دارن همیشه مترددن، همیشه خیال مخالفت در همیت که باید این را بکنیم، گاهی اگر مخالفت کردیم ما با دیگری دیگران کشته میشی، لذا در بیک مخالفتند، موافقت میوفتن، منافق کر میشه در شکو تر بیده، حیرانه که چه زمانی موافقت کنند؟ وچي زماني مخالفت كنه چنان ما الذين لا يؤمنون ما برت عبث قلوبهم تهون كره دين الاسلام از حضران شک و شبهه يکنه سخت پیغمبر و اسلام کرامت دارن در دا مترددن گاه فکر مخالفت دران واق موش نيستند و گاه سخت فکر ولا أراض الخروج دلیل دیگر اینها قدر نداشتن اگر ادها اراده خروج می با شما طبقی کی شما اعلان کردید کما بیت اسبه ایسلام مهم آماده اگر ادها اراده خروج را با شما بیت جهاد داشتن تو له قدرت کمسکم آماده کردن برای آن اسبابی قدرت اسباب سپرد و ودا اسباب را آماده می‌کردند خلا کہ انشاء اللہ لیکن بہ وجہ حرکت ثابت جان جلال جانشون درام کرد و قیل قدوم القائدین و گفته شد به حکم تکلینی گفته شد نتشبیحی که بشینید با آن آیتی بدون غزر نشستن شما ازرانتن شما ریاقت ندارید که با پیغمبر همراه بشین با امر تکلینی گفته شد که با آن برچه آن که در خانه نشستن شما مجل همانا بشینید در خانه و قدوم القائدین این حکم تکلیمی ایت خشکیمی ایت اللہ تعالی می فرماید که اگر اینا هم نی آمدن با شما در جیخن خیلی درید آنس اینا فتنو و فساد و اختلاف و رنج، رنجیدگی ایجاد بھی کردن لوکارا جنفی کن اگر اینا خارج خالق می شودن در میانی شما می آمدن تما دادو کن اللہ خوالا شما را برای شما یک چیز اضافه نمی کردن غیر از فساد فساد و دردیدی و اختلاف چون چرا در زبر و ناراحت ایجادی کردن بلکر در خانیس ما دادو کن الا خبالا و لا آدعو و خلالا کن البته تاک می دادن اشبارا در میان شما برای فساد این لانیت اون لانیت اون لانتاکیبیت او گوه بمانای خلال در میان شما برای در حالی که طلب می انت را آن انت کنندگان کسی نرابد لاؤ او، این حق بین شما اشد آشکار استفاده این خبینش شما تاکت می دادند در حالی که تلاش می کردم فکنده اون را تلاش کار فکنده بدن. وقتی کم شماون هنوزم تعدادی برای توان چینی و برای انتقال هر فنا برای کشف اتلاعات اش می دم که اینجا هر کار جمع می کنن و گزارش می دم به دست من. کم شماونه و در میان شما کسانی است که میشنوان لهم برای آنهاایی که نام دادند یعنی جاسوسان در اجازه برای کشف اطلاعات و این خصوص تعداد منافق‌شمرده است. و الله علیم و عالمی الله خالص عالمین در منافقین در میداند و آن عرب مغشاق میکند. حالا شرارت جدیدی این آنید این قبلن هم خیلی شرارت کردن لکه دبتا قبول فتنة من قبلو این مطلب کردن فتنة یعنی مخالفت رسول را خابل از این غزبه تبو وقلبو لکا لقومور وخوب غیر روح کردن برای شما قرارا قلبو لکا ایل زرارکا برای ظلل شماد برای ظلل شماد خوبی نازی رلو علاوه از این زدداری که الان ما آمدن یا برای کشم اطلاعات و برای ان کے جاسوفی کنن نحن که لنم برای ظلل شمادی رلو کردن خلب الامور حتی جا الحق تا حق آمد وعده صادق یعنی حد چیه تفسیر و ظهر امر الله حکر خدا قلبت ادا کرد اللہ سبحانه و تعالی سماره در بدر و غد و انظام و خنیل و فتح مکا این غشب تدوب با در فتح مکا در خدا کارش را آورد مالا الان این حد شاره اینا دازندوز این که بخانند کلمه و بیاین خود را مسلمان معرفی کنند قبلنم این ها در اهد در جاهای دیگری هم بر علیه شما خوب کارها را زیر کردم خوب تدبیر کردم خواهیم که حت آمد وعده صادق خدا و حکم خدا ظاهر شد فتح مرکز شد، طایب شد، هنین حکم خدا ظاهر شده دان آلیکی این آخی این آفشان نیداشتن فی روزی اشتمارا ان، و قامیابی اشتمارا و هم قارهون بیان خالان انصاف و اکسام منافقی را با وامل منهم مل هم اللہ تعالی بیان بکنه یک منافقی بنام جد ابن ایس ویسکر پیغمبر بی خاتف درے برای چبوک آمد به محضر پیغمبر و گفت که در آنجا زنان شعی زیبایی هستند زنان رومی و من فریفته زنانم وقتی اونجا ببینم آنها را من نمیتونم خود را لگه کنم لازم توی فکنه زنانی یکتا لازم من را با خود نبر و من را در فکنه نیم حسن پیغمبر میگه حسن پیغمبر گفت خوب حسن شعب من نلعی که در فکنه نیمت یک نه زناب. الله تعالی می گویا می‌نوهد که اول گروه اول از این منافقین آنها هستند که میگن به شما فرقم بر که ار دلی. دوباره از نبوده کنایایی ولاد تخت نی و را در پی یک و جامی رو طی کرد. Allah الله داره تنبیه خبر این حکیف اثنی مخالفت رسول که را مخالفت میکنند و فرمان خدا را کتاب اثنی میکنند و با این بهانه فوج اینها میگوین که ما را برگمر شما تو کتنه اند ای بادوارند در روح. اللہ تعالی میگه تباد شود است و با شما تو کتنه افتادن حالا به کتنه دست کاتو این حکیف اثنی مخالفت رسول و نافرمانی رسول افتادن لیکن نعمسا شعور ندارن این در دنیا هستی ناکل تکنه افتادن خبر ندارن و این در جهنم لمحیطتن بالکافری لیکن در دل مومن نبودن کافر بودن و جهنمم بخاطر کرده برای کفار را خور کفار را جهنمم بخاطر کرده کفار در حیطه جهنمم ازد جهنم در قسم تقوائی دی و کلی ناعتمان را احاظت کر دی انچاکر آر را اللہ و تعالی و جهنم را احاظت کر دی ولی نا حبر ندار شروع ندار و این جهنم لمحیطتم لیلکافرین ناخیری دشمنان اگر برسد بشمائے پیغمبر حسنی فاکی فیروفیئے تو قطعو این آره این حسنه شما خیلی نرهت میکنند بد میکنند دین آره جعره شما سیاه میکنند تسوه و انتو سبک مصیبتون اگر برستد به شمای پیغمبری مصیبتی رنجی بلای نرهتی یکولو میگن از خوشحالی کتخدنا عمرنا منکمو که الحمدللہ ما از اول کار خود را گرفتیم کد اخذنا امرنا من قبلو مخصدشین که ما برای خود از اول هیل کردیم و, و بعد در این معرکه نا آمدین و یتولم و بعد میگردم در والی که خیلی خوشحالا که در این غصر امران ندید ما آسیبی نرسید، رنجی نرسید ما فکر خود را از اول کردیم کد اخذنا امرنا آمن قبلو یعنی ما فکر خود را از اول کردیم در غذا شریف نشدیم بمای چاکی بیم نرسید یا تبلغ اینها باز میگردن این هر پرمیزن هم دو باز میگردن در حالی <سؤال> که خیلی خوشحالن <سؤال> در غلب که با شما امران نبودن وله ازا اینجا ده که آخی و یعنی قل <سؤال> بی اینها بگو بی این دشمنان که نیسی بنا چیز به ما نمیرستن الا ملکتن الله و لنا مگر امچه خدا برای ما نوشته اگر به ما فتی میرستن نوشته شده از خدا هست و اگر ما شکستی میرسد همه چیز دماغ نویشت شده هست لن الا ما کتب اللہ لنا مولانا او قارساز هست او مشکل هست اون مولای دماغ وددگار دوئی ناسیب نا دار او هست او حاکم مطلقه فرق از دوست میرسد بنا ایمان و اَنَ الله قَلِيَ تَوَكَّلِ الْمُدِلُونَ فَا خیتمانیش باید بر خدا اعتماد کنن مومنین مومنین باید اعتمادشون بر خدا باشد خیر و شر را از خدا بداند شهادت و نیخ وقتی را به خدا نکرده شقاوت همه چیز از خدا هست شما وقتی برگشتید ای پیغم باید دارا جا تایلی وقتی شما به طرفانما برگشتید بگو, بگو. که ای منافیقین شما منتظر یکی از دو خیر محجد. یا منتظر که به ما خیر شهادت میرسا یا به ما خیر تیروزی مومن در میدان جهات بی ایکی از دو خیر حتما میرسا یا به خیر شهادت میرسا و جنات فوری یا اینکه به خیر غالبیت و دیروسی. نیرسن خلاتم مومنن بی ایچ عنوان در مدید خطران نیست حالتا آپ کا سبول اللہ بگو بین دشمنان ماردار آسین شما انتظار نگارید برای ما الا احدال خسنه مگر یکی از دنی کی یا پیروزی و فرد دشمن یا شهادت شهادت هم برای ما خسنه خسنه در <سؤال> آشاعادت یافته که ازت خیر شما منتظرین و نه روند ترپ با شوی الله به اعداد و ما انتظار داریم برای شما که خدا به شما براشون از را از طرف خودش یا بدست شما شماره ازاب دارد یا کفر شما ظاهر و کپر شما ظاهر کنند مثل باقی کفار یهود و نصران بنو قرآب بنو نسیل اللہ تعالی با دستماع شما را دلیل کن شما عذاب ده. ما برای شما از دوتا یکی را منتظریم خدا با عذاب خودش شما را معذب کنند یا با دستماع شما هم انتظار بکشید برای ما یکی از دو که این نامه اکو ما هم برای شما منتظریم که خدا از خودش به شما عذاب یا با خلا زادر بر قول ثانی که اینها گفتن گفتند که شما خرج نکنید خرج نکنید در پیغمبر خبه سلاما خدا الله طبعا تعالی بینا میگه قول دو, دو بینا ان پکو تو ان خرج کنید بخوشی جیو خاطر او کران یا بی نخوشی از درخ خرج کنید به این صورتی از شما نفقاد شما بزیروفت نیست لاینی تقبل امینم. چرا؟ شما ایمان ندارید؟ چی به خوشی خرد کنید؟ چی به ناخوشی خرد کنید؟ در ارث شما تنفقات شما بازی رفتن خدا چرا؟ که اینا کنتم کنتوم این علت لاینی تقبل امین کم هست. چرا؟ بازی که اینا کنتم کنتوم طومر شما طومی هستی فاشه. یعنی نشترمان و خدا و رسول خارجی کافی. این خاطر صدقات کافر از او پذیرفته نمیشود و برای او اجدى ندارد. اگر تفسیری ما من آدمان دوباره از آنها نفاق آنها، اگر آنها و دلسوزی بلای آنها صلاه، اگر آنها صلاه، بلای آنها مگر اینکه آنها کفر کردم یبینی ما منهم خایلش الا انهم این جمله خایلش ما نمشد آنها را از تذیبش نفقات آنها الا مگر اینکه آنها کفر بله کردم و رسول خدا و نا آمدن برای نماز در مسجد الا مگر در حالی که خیلی جانشو گران و احلام در چون اعتقاد به نماز نداشتن و اینها انفاق نداشتن در امور خیل الا مگر در حال که بقاطر ایمان نداشتن نا ناقصند نداشتن نا این خرجن برای نمون نشان نرشان انها ایمان نداشتن این انفاق را هم در حال کراهت کراحت نگردن نا خیلی ناقصند نداشتن نا خرج نا نگردن پس اینها تخیراتین ها و صدقاتین ها فزیر و فنششه بساطرین که ایمان ندارد نب خدا و بدستورات خدا و نب پیغمبر دستوراته و نئی نها ارتقاط نماز دارد و نئی نها اعتقاد شده دارد ایسا لگر همین طرق برای نشان دادن دیارد که بل ما هم خونت کردین مدارش رو خونت کردین پیغمبر رو خلاصه برای نشان دادنه و این خزره برای نشان خیلی هم ناپشان و هم خالبون هستند و مجاعت فلا ولا اولادهم در قجب التحجب نیم در شماره ای در اموال و شما این خیلی این خیلی اولاد دارن مال و ثروت و امکانات مال همین منافقین به خاطر این اموال اینها و از این اولاد اینها شما در تعجب نباشید چرا لیکن که این نبا یریدو اللہ لیعظمون بیخام که حیات الدنیا و تنسخان بسو مهم قابل اللہ تعالیٰ تخمیم کریدتے با خدمت اولاد اولاد شب و روز در فکر امین آنسان خبشتر غمشن امینے اللہ اراده کرده که اینها را کند با همین مالها در حیاتی دنیا که شب و روز جانشون کنده باسد برای جمع کردن مال و کنده بیشه جان آنها اللہ تعالی اراده کرده که جان آنها کنده بیشد در آلکان و کافرن این دیگه بدوقی که جانشون کنده شب روز در جماعوری مال در فکر مال، در فکر, فکر شروع شب جدا زحمد می کشن، دوس جدا زحمد چقدر دنیا تو خیر گزرے باور وقت جن بھی تو بھی, بھی اگر یک روزی ایک زمانی نام که من به خدایه اللہ تعالی کرده در یک سفری شود اود یک میلیون بوده دو میلیون بوده او زمانی که میلیون ها او زمانی که شعریه ما که ازارتی در یک یک میلیون سود کرده بود و روزنهار نخورده که من پایده کم کرده خالا شما نگار کنی یک کارگر برای سید تمہیں کار کنی و یک لپری در یک معامل ایک, ایک میلیون سود ایسے وہ از رضا می اوکتے زمین ایسے اللہ تعالی انسان را دوکر کر دی خوشی آسو بین کنی و مال مانگی جارا اللہ تعالی مرکولتی شکونت خوشکش در رفت برائی خودش ہیٹ چیزی حاضرش تا الله اللہ تعالی ایمان کے بغیر اکی ایمان نہ دار تو جن شوں کنده لا تو چمکا انوالهم الا اولادهم انما يريد الله الله تعالی تصمیم گرفته ہے کہ مؤدب کون انهار در حیات دنیا بچان روح انہا بدن شون در حال حساب <سؤال> <سؤال> جس نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرمی پیغمبر اسلام کہ و وطالب و حق دنیا کی و طالب حق چلا ہر دنیا ہی کہ دنیا ایمان دارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم و ایک چیز ہے و طالب دنیا, دنیا حذر یہ خاطر اللہ تعالی نے کہے اہل کون بالله ان هم لمن این هم که شما برگرده یه پیغمبر تسم به خدا که آنها از شما مسلمان همشتن که الله تعالی تربیم می حالا که که ما هم منکم آنها از شما نیستند حقیقتاً از شما نیستند ولکن هم قوم و یقرب و از ما نیستند شراط تسم می که از ما هستند شرکتاً می که از ما, از ما, از ما لا خیلی تشدند که ما بعدا شا اللہ امری مالاش در مابیت شمشری شدیدی مارا کلم نکنه خیلی ترسی چرا کسیم این قرآن شما ولیکن هم این قطعه که آنها قومی اسلام ترسیم اصلا یفرکونا خیلی بی ترسیم خیلی ترسیم اصلاف میاندو مو مسلمانی مو باید متحد و متفق چرا این امیر ترسیم خیلی می ولکن هم قابو یا فردون لو یکی دون ملجن او مغارات او متخلن لبلو ایلیه مهمیت که نا در میدان نبقی غض بیمان ها ترسو که اگر اینها یک پناداری را می آورد یا یک کوهستانی در غاری در کوهستانها، یا یک سوراقی که فقط سریع آنها بره محبی یک سوراقی مکانی که تا قبلی شندران و راه هم تانی بوده است. اینی کشوراتی. تو لقبو ایلهای باز می‌کردم به طرفی این کنارا، به طرفی این غا در پوست کنارا، مغارت در پوست کنارا. یا یک دستوراتی دوباره شغالی را ببیند. تو لب لب لقبو ایلهای قرآن میگردن به طرف آن و از میدان دور فرار میکنن در حالی که اینها یجمهونه م... یجمهونه به قرآن میروند لیکن یجمهونه یک اقتلاح عربی هست مثلا میگن جمع الفرد فراد عشق باسته اکبر باسته ایک خود رعه میکشد از ریشتی ما میکشد اگر این دشمان کنده بیشه با چه سورتی میدم مثل هشکه بر وحشی بر چطوری باشد وشبندی باشد به دشمان بسته او اه خود را میتشه به دشمان میتشه اگر بیشه چطور پرامی کنه اینها هنونم مثل عصب سرکش مدمرید چطور میتشه خود بما از دیکھ رسمانش خنده و این قامونه همینه در حالی که اینها را خلیصش اینه الجموع اینها مثل اکس بسرع تو از و از بن خلاص میشه چطور میشه ولی خوب این شرکت دوبار ای اول اینها دادند که اللہ سماں و طالعوب که ما را نباید این کرماتی کنم میوکین الله طالع کرد و بشه مکشون کرد این فقط این حراقبانه ی چرخش نداره بروی بیگر از منافقی پانه میشدم به بنبرال سلام توالسلام تحمی کرد. این مال غنیمت را یا مال زکات را این و هم تمام مال زکات را پیغمبر علیہ و ببین چقدر از میده مالا میده میده خاطر و مردم و بعدی از این خریشها کسانی هستند که یاد می‌دهندش سدکات، اد می‌زنند شماره F، ادنبار در تحقیق سدکات. اگر داده شوند آنها مطابقی می‌لیشون از این صدقات در ربون خوشحال میشن. و اگر داده نشوند از این سدکات، به نیز مطابقی میلیشون که ادای همیش قطول خورنی نه نراثن، نراثن تو چیو چراغ میکنه. اگر این شنبختها خسر عالمی شدن رخ بس امنی راضی شدن دانچه که خدا می دهد انعالا مخوف که اثبار و رسول بان عامده مخوف که و این هم الله بس اصطقافیت مالا الله ان کریم می دهد ما الله از فرزلهای خودش و رسول گرامی اش انا الی الله راغبن ما بترف خدا راغبی اگر این کلمات را اینها هر راغبی شدند اینا همش شرط ببین لو انهم ردوا ما اطاعوا الله و رسوله وقالوا حسنا الله سيتين الله من طاع دي و رسوله انا الی الله راغبن این همه جمله ها شرط دار جتا لقاوا خیرا لنفس بران خیر خیر اگر این ها به ما عطا الله و رسوله خوشحال می‌شدند تسبن الله می‌گفتند سایوتین الله من فضل هی بی گفتن و رسوله ان علی الله راضون می‌گفتند تو لک خیر الله تز ما برای ولی آنها خیر ولی با وقت ها پیغمبر رسانه نمی‌شد حالا بیان مستحقین زکات زکات حدد شکرانی و سهد زکات کی بیخاطر در ترید مناطق و اون سرمایداران کلمه حرف آمد. این نمک صدقات، صدقات فرضیه مثل زکات، اینها به کوچکراه است اختلاف کرده. فقیر بدون کس میگویند که هیچی ندارد. و مسکین و به عنایت مسکینه. مسکین کتیر میگن که مقداری داره زیاد نداره. کوتله موتی دارا والعاملين عليها، وأنا هاي كعاملن برصدقة. ين الطرف الحاكم والطرف الحكومة، إنهم أمرن كبرن زكاة جمع كونن أسمتهم. خوّ إن هاملين على على الصدقات، أتجمعن ز زكاة حقوق بدن، حاكم. خو زمانين راعملين عليها مجد. والمؤلفة قلوبهم، وأنا هاي ك. دلان ها بدست آورده می شود که کافرم و تقریرم لذا مال تکذب هست با آنها داد خاطی الان ها بدست آورده. به خاطر این شنکره در کتاب های دیگه گن که منسوخه به خاطر اینکه الان نیاتی نیست که ما دل کافر را بدست یاری و اسلام ایلزت و شوقت پیدا کرده، حکومتی بزرگی در زمان حسن عمر رضی اللہ عنو گمتا اللہ، مانیاز نداریم کسی را بداشتی آنیم اون زمان مانیاز جمعیت از می دادن دل طرف و و که بخاطر خاطر فقیره، سلام باید به اندازه تا دیگر آنها به آمد، توی جماعت تبلیغ دشکیل میشن توی مدرسه تابنامه کنند، بیا انتخاب کن. خب، اگری کانال دل این انسان ها را به دست واید انسان های نادر که بیین تمایل ندارن، وادادن ما دل این را به دست آوردن، این همه هست. بل مالکت قلوب و پر رقاب. ابل بدعت را ابل ریغ را احل را بعد آدم مال توی خط آوردن خیلی خوبه نشکی بیاریم این حالا وغانا باید کسی کسر وقت داشته باشد همچنین انسان غیر کم توازیو میکنه بعد آدم مال این حالا آوردن تو زر کلاس ای خریجی خوبی این حالا آوردن تو جماعت تشکیف کردن این حالا آوردن تو مسجد بلو با ما مسجد خدمت میکنه افتاری میدن تو so, دیاری دلک در می شود خودش می مخلص و پر رکال و الغالمین و در این فکر رکال آزادیه گردن که غلام ها قدیم مال می خواستن سایبان شمکا که آزاد و شمکاتبه شمک کردن حالا برای آزاد کردن گردن غلام ها الان در حال حاضر هیچ غلامی نیست و الغالمین و اون انسان هایی که کارتلات که کانالی بگردن آنها می‌دهند. جزکات مال خارمی نه که اونها به آنها داده بیشتر تا آنها بیوند خود را اداد کنند. و پیش بین الله در راه خدا. کسانی که در راه خدا محبوسند، اشتغال کپار ندارند و مشغولا حالا مجاهدان، طالب علمان یاد داده کسانی هستند که در راه خدا. حتما این ها باشتر الزقاطن وابن شریف و مصاحره که در محل خودش همه چیف لیکن لکن اینجا آمده در این شهر آزاد و رایل خودش مانده این مصاحره هم دادن فقط به نشستن در دست دارشته هم جای غاری می‌یش بیل الله و طلب علم و خطرانی که دیگر در راهای دیگر ایلحی مشغولا و کتفقار نمیتونم بکنن و فحیرا رفی صدیل اللہ تشکل و ابن شبید خلال فریضت من الله فردی از جانب خدا بیشت این فریضت مبتول مطلق فرد اللہ فریضتا فرد شد خدا سکاتره و در این مورد داده بشه. بعد از امم میگم بایر در حر از این سر بایر شدان کم تسنه پردیلن بله تمام ابو حنیفن نیدوی اللہ از همه صارف پر. اگر تنها شما بفغرا بیدی تنها بمساکین همه و اللہ و, و حکیم اللہ تعالی علیم مناسبنا در مناسب حکمی کنن خور این گروه از منافقین. پیغمبر علیہ السلام را نعوذب اللہ احرانت کردن چکتہ این پیغمبر گوش کیه گوش هر چیز را میشنمه گوش خوشی و ناخوشی و هر هر پراب گوش میشنمه یعنی نعب پیغمبر علیہ السلام را نعوذب اللہ تشبید آدمی گوش کہ هر چیز میشنم دو باور بکنن اللہ سبحانه و تعالی فرمو نا تو پیغمبر من ارشاد سلام رب العالمین نسبت انسان و نادان گفت که یہ ہر پیغمبر را پیغمبر را پیغمبر یعنی این گفتن گوش یعنی این پیغمبر مثل گوش اقل نداره هر حرف را باور میکنه میشنو باور میکنه قول دو دو پیغمبر میگاه که او گوش خیره میشنو خیر شما او ایمان به الله داره یقین میکنه یومینو بیلا و یومینو لیل خدا را دارد پیغمبر را اس و یک چیزی ندارد او او الله را اتقوا شفیع محمد مومنین را و رحمت یس برای مومنین از شما اونها کی مومنان او رحمت او یودون رسول الله شمرایتو همین پیغام بر صلی الله علیه و وسلم اونها کی اطیاعت پیغمبر صلی الله علیه وسلم, وسلم را برای آنها عذاب عظیم است این ها وقتی گفتن پیغمبر گوشه و شنو یعنی هر چیز را میشنود خیر و شر را باور میکنند. ارود باو نه. اونی که خیر را میشنود. اونی که شر پیغمبر و او کاری ندارد یعنی نمیتزیرد. حکست و فنان صادق را قبول میکنند. ما نسکیمید. اونهای که قاضی برند و دروغ را باور میکنند. و کرینه اینه. گوش خیر برای شد. خیر شما را باور میکنند. یعنی تنها سخنان صادق را پیغمبر که شما صادقانه بگید باور میکنند این هر راست هم میگفتند دروح هم میگفتند اون می پیغمبر تفکیق میکنه خدا را تفکیق میکنه مؤمنین را بس سخنان مؤمنین اعتمار دارد و رحمتی برای مؤمنین از شما خلق منافقین در لیست مؤمن بودن یا نبودن. کلمه میں سنان نماز در سنان رسول الله رتاں امانت نہیں گوش چیز نہیں چلے تو بابر نہیں کلمه امین بود برای شما پیغمبر مراد سوم حلف شما شما را و قاتان بخشمارہ خوشنود کنن مال جان خود را خوش مال و جاناں قدر ما اللہ و رسولش فقدارتن تو اُورا خوشنود کنن خران این زمین یوردو مقابل اللہ و رسول احد کو ان یرزو ما باقی ہو یرزو ہو اُن خود رضای خدا رضای ضایع رسانید یا رضا کنن پیغمبر رضای پیغمبرم رضای رضا رضا رضا رضا رضا رضا رضا خدا۔ به این خاطر سبحانه و تعالی جا مراد دار اخلاص ہے۔ الله و رسول ارشد حق دارن کہ خوشنود کنن ہر یک ایران خوشمدیه یکی خوشمدیه دیگری. هست انکان و مومنین اگر اینا ایمان دارن و در اطلاع ایمان راس میگن تو خدا را راسی کنند پیغمبر را راسی کنند برای شما مومنین کسام های می تا تاکه شما مومنین را خوشمد کنند و از شما جان و مان خود را محکوش کنند حالان خدا و رسولش حد داردن که اینا راسی کنی کردن با اخلاص. با ایمان خالصانا علم یعلمو تقییف و خرمیه علی کفار منابزی مزمی دانا شان اینا تو ضمیر شان که هرکت و خالفت خدا و رسول کنا تو پاسبرائی اگور نار جهنم از کمیشه تنگار جهنم ایمان این رسوائی ازیمت ری دان نمی دان مخالف خدا و رسول متحد که جهنم زده بر استعزاب یه درون منافقون همیشه خوب دارن منافقان از مضور ای که خبر کنند آنها را به آن که در دل آنها همیشه می ترسند از مضور ای بر سر آنها هم جمله را به من را مستق می کنم این خاطر من نصور بارا می کنم دارن منافقی از نزول ای بر آنها چنان سوری که تو نبیه به ماسید خبر کنه مومنین را به آن که در دل از نزول چنین سوری همیش اخراس این خاطر الله و تعالی میگه احساس تحظیم شما تنسل گوش بگید یا کلمات دیگری احامت آمیس بگید شما مدخر کنیم اینالله مخلص ما الله طلعت عهد میکنه آن فقیرا که شما حذر دارید در دا ظهور آن، خوف دارید در دا ظهور آن. و در که إلى المدينة من حزدان هم در تبوت بود. خود را که انجام کرد پرسیدی، نه طا، اگر عایم مدینه، نه عزب الله کلیل عایم مدینه را خلاص می‌کردیم. اتفاقی را فعال کردند. شما تیمی چیزی مدیده مدیده مدیده کلمات دیگر افغان تابیسی. تو برای قم برا نه استاد کلام قلب شما استهزا کنید اللہ ظاهر می کند قبل فاغیرت شما حذر دارید خوب دارید این حالقات خب اختیر شما سآل کنید ای پیغمبر از این شما بختها که چرا استهزا کردی؟ تو قرآن در جواب می گوین که انما کننا نخوضو ما داخل شدین در عرفهای شوخی و نلعب و بازی کردین شوخی کردین ربین خبیصها ادالله و آیاتی و رسولی کن من تستهدن. شما بی خدا و آیاتش اشتر پیامبر کلامی شما شوخی داری استحزاد داری خبون اکیم اگه شوخی شوخی بارش بابا هم شوخی حجب امسان آئی اپنی خیلتی شو ما شوخی کردی شوخی با خدا و رسول لا تعدد دیرو حضر مطرحنه کنی حضر پیشنه که شما افردی رفتا نمیشن لا تاقید تا شما کفر کن بعد ایمانی شما کافر شدی بعد از ادهای ایمان افردی مثلا تم غمبر گوشه هرچیکی میگیم میشنه اما عذر بالله به غمبریت انسان شعادهی تمیز خوب و خراب را شرخی را گره را ندار الان میشه اینکا وقتی بدسون که تیره بردم به شرخی میگن یہاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خاطر اللہ تعالی نے کہا اور تب اس لا تاگزیر شرک کا کبارت بعد ایمان ہو۔ تم کافر شدید ایمان۔ تو عبادت اظہار ایمان تا. اگر ماں اب کنی ایک به خاطر بخاطر ایمان دےش تو نواب ہم نہ جاب نہیں دیں طائفے دیگراں پر خاطر ان تو کی ایمان بسنے دی ہم نہ جاب نہیں دیں طائفے یعنی تو کی جی ایمان بسنے دی سبب بس اینکه کہ کانو قانون بودن دودن در علم ازلیہ دا در علم ازلیہ الہی سن بخش حالان مورد نظر منافق وہ منافقات اللہ تعالی مورد نظر آنها را بیان میکنه المنافقون و المنافقات مردان منافق و زنان منافقات بعض اینها از بعض دیگر نصبت میکنه بعض ممنبر؟ یعنی بعض اینها از بعض دیگر درس میکنه درس چی چیز؟ یا امرون بالمنکر امر منکر میکنه دیگر را یعنی کفر و شرف و نفات و الناحی از و ایمان و یقبذون ایدیه خود را باند می یعنی در راہ خدا انفاق نی کنند و من ایچهارم این آتیه بوجه ادم ایمان را پراموش کرده یعنی توفیقی عبادت و دا عدد خدا را یعنی خدا, را خدا ان قمر به تحقیق منافقین امین ها فاسقان درجه یک ها سات اربانا فاخر دعوانا الحمدللہ